در آخرت می توان به که شماندان خود رفت یا نباله میشه باپدار، با مادر، زن، فرزند زیاد ناراد نواشید در اول فرار میکنید محشر یا که فراری هست یوم یک سلبر مناخی و امی وابیه و صاحبت یومی از زنا فرار میکنی، از پدر فرار میکنی، از برادر فرار اول فراری هستید در محشاک انقاض سنگیله فراری در جهنم هم اونجا خبری از هم دیگر نیست. نه دقیقاً از عواص انگینند که فرصت برای فکر کردن اونجا نیست. فقط میمان بهشت. بهشت را تصدیق در بهشت با هم ملاقات می‌کنید. دلیل داخل قرآن هست. والحق نبی هم سوره نجم ان شاء الله سوره اونجا خداوند متعال یک اونها رو ما با هم دیگه ملحق می‌کنی خانواده‌ها رو. اونجا ولادات میکنی و دلیل بعدی هست که آوا این خانوایی که اینجا دارید اونجا مال شماس ولکون نمیشه اینا از اینجا تصویرش ولکون نیستن اونجا مال شما, شما هستن اما به صورت ندگی اونجا خیلی زیبا و اون یک ملکه و سردار کل جورا قرار میگیره اونجا تحویل شما دادی میساز